بازنگری در تاریخ قلم رو میانی. فرگرد اول وندیداد یکی از مهمترین منابع تاریخی ماست فرگرد اول وندیداد و عجیبه یکی از قلط انداسترین هاست یعنی اگر تو فرگرد اول وندیداد اشتباه کنی همون سی سال بادرارو اشتباه بیری حتی عجیبه استادای شناس استادایی که رو تاریخ روای ایران باور باوردارن هم متاسفانه من ببینم فرگرد اول وندیداد رو یه چیز دیگه متوجه شدند. شاید بگن چطور شد. همه نفهمیدن توی یکی فهمیدی؟ نه خیلی اونا هم که اینو نوشتن میفهمیدن. تعدادشونم خیلی زیاد بود. یکی از چیزایی که واقعا درباره باری جمشید من تا الان من نمیگم من هر چیزی که درباره باری جمشید وجود داشته در متون پس از اسلام و متون کهان و همه جای همه اصطوره ها خوندم. ولی تا اونجایی که مطالعه کردم واقعا در دوره جمشید اتفاق افتاده که بر اساسش یک اتفاق بعدی افتاده که دیگه همون داستانهای کوچ و خلانه اینا باشه من پیداش نمیکنم جایی ابو معشر همچنین گوید ایرانیان در مدت سلطنت پادشان خورنیست اختلاف دارم به عقیده بعضی که ایقوباد سر 20 سال پادشانی که و به برخی پادشان به 10 سال هم نمی رسید. یعنی این نکته که اینا آدمیزاد بودند و سال‌هایشون طبیعیه، یک مسئله خیلی قدیمی هست. جدید نیست ما بشید رو قرن 20 اینا را تعدیلش کنیم مثل با سومر کرده. یعنی این نویسنده با پجوش کردن تاریخ ایران خودش رو به این قضیه رسید که این اعداد غیر طبیعی است، اصلا معنی نداره، چرا معنی نداره و بهشین پیدا کنیم و پیدا می کردن. انسان انسانی غنی 21.com میتونه بره کردارها رو پاس پیدا کنه، بگه این حالا و چیز از اتفاقی به عمر روزگار. ولی نمیشه مطلقاً این کارو کنه چون این تا اینو حتی گزارش باستانی هم به رسیدن و اینو رد کردن. برنامه نهام و برنامه شاهکاری بود که من گوش میدادم حالا فکر نمی‌کنم در جهان همچین نشستی بوده باشه که از هندوستان تا منابع ایرانی و میانه بخوام بیان بناوبر انقدر قشنگ با هم کنار هم بچینن. برنامه نام نه نهم خانم دکتر دام اندادای هفت فرمودن که در ریوییدای مانداره هفت اومده که ایرانیان مردم ایران میگفتن آنو بعد من کتاب شادان جان شادخسنی داشتن و اون که من این فوجاری جو دیدم ولی یادم نمیومد کجا بود تمام کتاب های تاریخی همه ریختم بیرونات و آخر سر اون کتاب شادان جان شادخسنی دیدم بعد در زبان سومری به قلع و برده و چیزهایی که از آهن آهن شهابین مخصوصن از این اقلامی که از فلات ایران به سمت سومر می به اون می گفتن انا. به نام خدا با عرض سلام و عدب احترام خدمت همیهنانی گرامی همراهان صدای امید و علاقمندان و کسانی که پیگیری می کنند در قسمت بیستویکم در خدمت شما هستیم. قسمت 23 رو می‌خوایم از جناب آقای کریمی شروع کنیم چون در قسمت گذشته مباحث ایشون رو نمیتونستیم در 200 دقیقه پایانی برنامه شروع کنیم چون بحث ابتر میموند و درست حق مطلب ادا میشد لذا در این قسمت از برنامه از ایشون شروع می‌کنیم. زبانش زبان‌شناسانه در مورد دوری جمشید رو می‌خوایم از ایشون جویا بشیم. جناب آقای کریمی، سلام علیکم باشون نمایندگان عزیز می‌فرمایید. در خدمت شما هستم. به نام خدا و درود فرغان خدمت تعمیانا نم در سراسر جهان در این قسمت من از قسمت اوستریدر آقای رایشلد قسمت وندیدار میخوام دونه به دونه بنده که این بحث مربوطه رو بخونم بله خب یه سری از مطالب جلسه پیش مطرح شد اینکه تا سرمایه نام برده شد بعضی از دوستان عزیز اعتقاد داشتن که سرمایه سرمای سرما پس از صر وقتوندان بوده روزمنند اون بوده باشه یا اینکه در یخوندان اینا مهاجرت نکردن یا که رود دایتی و جایی خارج از آسیا میانه که من نمیشه خاصسان بزرگ و رود باشه حالا با دو دونه به همش رو اینکه اینکه نخست که باید, باید بدونید که اصلا اصلی یخوندان از۲ هزار قیمت چهبار اتفاق افتاده بله هر کدوم از اینا یه دوره واقعا خود از یخوندان بوده حالا من میگم از کجا این همه از های ما زمین شناسی معتبر من آوردم اگرم گفتیم می‌خوایم نظر بدیم آ کتاب زمین شناسی از فرگرد دوم من شروع می‌کنم دونه به دونه بعد مقایسه می‌کنم کتاب انسان شناسی فرهنگی نوشته دانیال بیتز فرِد بلایک مترجم محسن سلاسی بله محسن سلاسی سلاسی بله <تصحی> استاد مسلم زبان شناسی ایران هستند خود به زبان شناسی جامعه شناسی ترجمه کردن بند چهار وندیداد اهورا مزا پادشاهی را به جمع پیشنهاد میدهد دونه دونه میخوایم بخواه بله اونه که مربوطه بند پنج جمشید این نوید را می دهد که در پادشاهی او نه سرما باشد نه گرما نه بیماری و نه مرگ. اینجا اشاره به بهبود شرایط محیطی و آواهوایی کاملا داره اشاره میکنه نمونه همین بند در متن فهلوی مینوی خرد روی چهار پنج اومده درست. در بند 7 آشکارا به جمع جایگاه شهریاری میرسه. خیلی هم کوتاه این بند. در بند 8 اینجا آغاز میشه به توضیحی که گسترش میده میزنم کوچ نمیزنم میگه نخستین 300 سال شهریاری که از جنب میگذره بود جا برای مردمان، رمه ها، سگان، پرندگان و آتش های سرخ وجود میاد. ببینید در بند پنج این نویدو میگه که نه سرما باشه، نه مرگ، نه بیماری، نه چیز کشنده گرما بعد که گفتیم مربوط به اشاره به بهبود شرایط محیطی و آب هوایی داره در بنده هشت ما داریم, داریم نتیجهش رو در بنده هشت میبینیم بند هشت داره نتیجه بند پنج رو توضیح میده علت این بهبود جمعیت زیاد میشه حالا من تمام این رو بنا از کتاب متقر میخونم جامعه زیاد میشه و باعث میشه یه گسترش اولیه به وجود بیاد این 300 سال باید ببینیم ببینیم خب نیست بعد ببینیم یه کلونی چقدر طول میکشه بتونه یه جامعه انقدر بزرگ بشه تا دیگه نیاز به گسترش داشته باشه من باز کوچ نمیگم دوباره این به بند نخست این گسترشی که میگه به سوی رپید فینر واسه نقطه هم میخوننش که آشکاران امروزه ها به راه خورشید حتا میگه هو بند 11 این خیلی مهمه خیلی مهمه نشو سه تا بند هستش حالا من دونه دونه میگم می عدم درگیری با مردمان فرضی بومی را اسوار میکند چرا چون در بند 11 میگه که آنگاه جمع این زمین را گشایش داد به اندازه 1 سوم پیش از آن چه بود در پیش در آنجا جایگاه برقرار کردن چارپایان کوچکندگان و سطوران و مردمان به همان سان که علاقه اشان بود قشنگ ذعوش کلمه رو آورده یعنی دوست داشتن علاقه یعنی بدون هیچ درگیری این از ترجمه های استاد دکتر منشی زاده هستش استاد دانشگاه کلمه طباطبایی کلمه زعشق آشک آشکارا در این بند اومده یعنی که هیچ درگیری مردمان فرضی نبودن که وای بخون درگیری بشن قتل روزی نبوده دوره در بند دوازده 600 سال از شهریار جمع میگذره دوباره 300 سال دیگه و میگم اینا همه نمادی برای گسترش جمعیت به خاطر همون حرفی که در بند پنج زده تا دوباره کمبود جای برای مردمان و سغات قشنگ همه این رو دور توضیح میده دوره بند 14 دوره همین گستش به و سوریپیسوینو دور توضیح میده یعنی تکرار همش دوره بند 15 دقیقاً مثل بند 11 دوباره همین قومیان فرضی رو رد میکنه یعنی نشون میده دوباره با علاقه خودشون پیش اومدن دوره بند 16 برای سومین بار این 300 سال اتفاق میفته میشه 900 سال پس این هزاره که میگن خودشون نگفته بودن در وندیداد بوده و ما از کجا میدونیم این دستکاری ساسانی نیست؟ چون خب کلمه وندیداد میتونیم بگیم ساسانیه چون می لحجه از دو میگه ولی لحجه عوستهیش میدونیم دعو بعد می بود ولی الانشد دو که شده وندیداد پس میدونیم این لحجه از ساسانی گرفته شده ولی ما مطمئنیم که این اعداد با لحجه عوستهی خود مطلق عوستهیه و به هیچ مان دستکاری ساسانی نیست 90 سال از شرای جمع می و باز کم بوده جا جاور مردمان و ستوران پگان دور باز به وجود میاد یعنی می بینید از بند 4 تا۱ تو توضیح اینکه چهجوری نه دو سه دوره 300 ساله به خاطره که در بند 5 توضیح میده نه سرما گر و نه بیماری یعنی شاایط خوب این نام واع رشد جمعیتشون میشه در بند 19 دوباره باز عدم تکرار درگیری هستش بند 20 تا 21 سه و نکته بسیار مهم داره نخستین با جمبا شروع میشه انجامن فراز بود در آن کلمه انجمن اینجا های آغاز آین میترایسم مهبرستی ولی هنوز به صورت آین در نیمده وجود انجامن خیلی راستا توش داره که حالا به موقاش بهش میفردازی کلمه انجامن مثل نخستین بار در اینجا ازش یاد میشه در زمان جمشید نکته دوم از ایران ویشت یاد میشه نقطه سوم رود دایتی حالا همه این رو متونه تو توضیح میدیم که چه جوری میگیم رود دایتی باید همون شمال باشه این بخش از وندیداد مهمترین سند تاریخی در جهان به بب... پاف... پافشاری تمام میگیم چون نه در سومر هم چیزیو داریم نه در عکاد نه در آشور نه در مصر نه در هند و نه در چین در هیچ کدومشون به این شکل از اصل یخمدان یاد نشده مثلا برنامه‌ای پیش اما عرض کردیم خدمت گرامی که ما در تمدن‌های مختلف از سیل ها و از طوفان های بزرگ داریم نمادای ولی نماد از یک سرمای طولانی که در واقع یخمندان باشه فقط تو توندون ایرانی هست و در اسناد کهن که ایرانی است که در واقع ما از یخبندان منبع داریم در درود شما در بند 23 اینجا ما بس چی میگیم این باید از یخمندان باشه بند 23 اصلا حجرت رو به همه تمام میکنه یه از شدت سرما اورومزا به جمعیش حشدار میده و میگوید جانبان در دورترین ها ما فسفنده ترین رو میدونیم در عوضه چیه و میدونیم کجا تمام مثلا میاد کجا ترمیان در دورترین ها حتی بر روی بلندترین کوها و در استوارترین خانه ها سرما آنها میگهد حتی اگه در اینجا باشن سرما تاپ تاب نخواه یعنی خیلی فراتر از یه سرمایه معمولی یا پاستفند سرمایه دیگه است یعنی آشکارا داره دقیقا حتی اگه میگه در دورترین مکان‌ها کوه ها و در استوارترین و این اصل یخوندونه برامون مسجله این من نمیگم همه داشمندای زمینشناسان اینو تایید کردن که گفتن شما اصلا میگه ده ماه زمستان 2 ماه تابستان و در این دو ماه آب سرد و گیاه سرد این گیاه سردش هم بسیار جالبه من کتاب اصل یخوندون که گفتم که گفتم شدمندگان بخونه دقیقا دانش شناسی به این نتیجه رسیده که در عصر یخمندان دو فصل بیشتر نداشتیم که در این دو فصل ده ما زمستان دو ما تابستان که در آن گیاه نمی رویده اصلا یک موجزه است یک موجزه بی نذیره. بعد در بند 25 که شروع میکنم ساخت ور وره جمع کرده توضیح میده از توی احورم من 26 اشاره آشکار و بسیار مهم در ساخت ابراه و خانه داره من نمیدونم چرا توجهش نکردن اینه 26 یعنی داره به ما میگه که کشاورزی بعد از اصل جمشید اوج خودش رسیده بوده که آبروه براش میساختن که دستور میگه آبروه بساز برای چمزارها این اینکه بخوایم مثلا بگیم آقا زرتوش واسه که پیش از که زرتوش هست هم چیزی نیست زمان پیش از اونم حتی تو خود وندیداد آشکارا اومده خب ما از در مورد بند 5 که گفتیم که حالا من 5 نشچیری هستش بعد خدمتاشون عرض شد که بعد از این 5 تا وقت باشه من دوست دارم از متن کتاب بخونم 1 جانوران اهلی مانند گاو اسب مزر میخوام خر اینا بهش میگفتن سطور یعنی بزرگ و گوسفند و سگ میوایه از پیش از دور جمشید رام شده باشن که اینو ما در برنامه پیش هم گفتیم چون اینجا داریم میگه تعدادشون زیاد شده پس اینا رام شده بودن که به دور دوره ما رسیدید دو، برابر و یافته انسان شناسی انسان ها در یک دوره به علت بهتر شدن شرایط محیطی آب و هوایی دارای رشد جمعیتی شدند که در بند 8 12 و 16 کاملا این اومده. حالا ما از کتاب میخونم از کتابی که خدمت شما معرفی کردم اینا همه ثابت شده است یه تاریخ و ماقبل تاریخ انسانی افزایش جمعیتی شدیدی را همراه با تشرید کاربرد منابع نشان میدهد. اما این روند وقف ناپذیر نیست. همه گرایش بر این بوده است که دوران درازی از سطح جمعیت ثابت به دنبال دوره های رشد، رشد سریع جمعیت پدید آید. یک چنین گسترش سریع جمعیت با رشد کشاورزی در پیشتر نقاط جهان همراه بوده است. این تا اینجاش. دوباره در جای دیگه صفحه دیویس و نوزده. دوران همه در مورد بند پنجه. گفتم نشوناها شما در بند پنج که نبود سرما و گرم و ایناست که نشونههاش در بند هشت تو دو و شونزه و تراکم جمعیت در خوش نشون میده. دوباره در صفحه دیویس نوزه همین که تا که معرفی کردم یه تراکم جمعیت در میان جوامع کشاورزی ستی نیز از جامعه شکارگر و گردآورنده بالاتر است در میان گروهی که پیوسته در حرکت نیست بچه ها پیرها و آدمها بیمار نمیشون و فرصت بیشتری برای زنده ماندن دارن اینجا که میگه ها بیماری نیست معظور این استرا میگیم می بینیم است اینار داره بیان میکنه نه که هیچ بیماری نباشه من میشه ما نیم این بیماری ها رو بگیریم. اه. این داره میگه آقا این دلیل بی... بیماری ها کمتر شد نرخ باروری نیست در میان این مردم بالا می رون. اصلا بی نظیره زندگی اول کشاورزی ب... این, این که دوستان که... دوچار تشریف مذرد میخوانیم میگم این که ما دلیل کوچ فقط یه چیز نبوده یعنی چند تا چیز بوده یکی به خاطر گستارش جمعیت یکی به خاطر سرما ما همین الان هم داریم ما مثلاً قبل از انقلاب ما مهاجرت با امریکا داشتیم کسایی بودن که قبل از انقلاب رفتن درست درست بیشتری زمان انقلاب رفتن الان هم دارن میرن یعنی دلایل مختلفی این کوش داشته نه اینکه فقط بگیم یا سرما بوده یا قبل از اون بوده از سرما اصلا هیچ اسمی از کوشا نمیاد ما مهاجرت ها بله به دلایل گوناگون بوده. بوده مثلا ما داریم ما قبل از انقلاب توی برهه‌ای که مثلا سیستان و بلوچستان برای اول ما. یه دوری خوشحالی اولیه گذرونن یه عده جمعیت عظیمی اومدن مهاجرت کردن به استان گلستان مادر استان گلستان شهرهایی داریم که بلوچان مثلا شهر آزاد شهر مثلا درود به شما داریوان. داریوان. استان و گلستان هم, هم ولی اکثریش حتی بلوچ هم حتی بله دقیقا بس این نزدیکی که من حالا یه صحابت هم پایان بدم این, این که میگه بنده من چقدر بنده پنج تاکید میکنم به خاطر همینه که این اشتباه نشه بند پنج داره تورزمات گسترش اولیه که پیش از سرمایه به خاطرش خوبی شرط آبه هوا و رشد جمعیته بله ولی این گسترش بعدی به خاطر سرمایه. سرمایه بوده بله خیلی متشکر چنامو ایران مهرما در قسمت گذشته یک فرضیه از شما گرفتیم و قول دادیم که در این قسمت اون رو بست بدید و یه فرضیه که حالا اولین نفر نیستین که اون رو مطرح بلکه یک بود که از قبل مطرح بوده و شما در واقع اون رو میخواین اینجا مطرح کنید، اینکه در واقع اون مهاجرت‌ها یا کوچ‌ها یا کوچ هم حالا زیاد جابجایی‌های اولیه لزومند به خاطر سرما نبوده و قبل از یخمندان صورت گرفته ادامه فرماسیات شما رو میشنم و اینکه که در مورد مکان رودخانه دایتی رو برد درود بر شنوندگان گرامی من پیش از اینکه بحث رو آغاز کنم من میخوام دوستان لطف کنن در نوبتی که خودشون شد آی کریمی گفتن الان آیفیروزی فیروزی مدعین یک جا تو تاریخ روای ایران نه دوتا من خواهش میکنم یک دونه سند به من نشون بدن که نیاکان ما بر اثر سرما مهاجرت کردن دوتا من نیاز ندارم یک دونه سند برای من بخونن که بگه نیاکان ما بر اثر سرما مهاجرت کردند کردن. یک دونه حتی بعد صحبت های ما آی کریمی هم اگه سندی دارم بخونن آی فیروزی هم تو نوبت چون شد بخونم. منم این سنده رو برم ببینم بذاری نیاد بگیرم خدمتون بگم درباره هزارها. ها من یک بار دیگه هم دوستانم بارها گفتن من هم دوباره از آن کنم تو نشستای قبل هم گفتم هزارها ها دستکاری شده است هزارها ها دستکاری شده پس از قضیه جمشید احتمالا ما یک مقدار دیگه که بحث کنیم خوبه که بریم سراغ هزارها، ها سراغ دستکاری هزاره ها ها چه شکلی بوده و چه شکلی پس از دستکاری چه شکلی شد حالا که ما رو از دست دادیم چه جوری میتونیم دوباره اونو به شکل اولیش تقریبی رسم کنیم بیاریم بعد چون یه تیکاش پرید دیگه دست ما اسنادی بود توی این کهندجا نابود شد بعده ها و اینا ثبت شده بود اون برشا ببینید شما یه خط رو در نظر بگیرید این نوار کاغذی در این جشنا دیدین اینجوری چینش میدن دالبر بله. بور دالبرش میکنن بله دالبر یعنی مثل دال دالزال ببرش که بعدا حالا یا میگن زیگزاگ مثل زد انگلیسی مثل دال فارسی دال برش کنی وقتی که اینو دال برش میکنی یک مثلا یک تیکه کاغذ مثلا فرض کنی چهار وجبی میشه یک وجب و نیم درست بله این طولش کم میشه اما اون وسطاش انگار میره تو دل هم حالا چی شده یه بخشی از هزاره های ما رو در یک دوره‌ای که بعداً توضیح میدیم به ضرورتی که حالا در زمان خودتون گویا ضرورت بوده دالبر کردن، فشردهش کردن. ببینین کاغذ رو میشه فشار داد. اما وقتی دوازده هزاره رو فشرده می‌کنی، نمیشه که دوازده هزار سال رو بکنی 6 هزار سال که. باید دوازده هزار سال سالم باشه. چیکار می‌کنی؟ از تیکه های این نزدیکی می‌بری. میندازی پشت سر جایی که نیاز داری. تیکای از این دوازده وجب رو می از این جای نزدیک خودت می برید تو اون قسمت های اول نصفش میکن بعد چی میشه بعد شما بین گشتست و بهمن میبیین سه هزار سال فاصله فاصل بین بهمن و همای دو هزار سال فاصله میفته بابا بین اونا چیزی بوده وقتی دابارش کردن فشارده کردن بهمن حمای پشترم قرار گرفته وقتی که بازش کردن فاصله اون فاصله ها رو ما باید پر کنیم بله هزارها دستکاری شده منم قبول دارم بعد واقعا چندین نشست با دربارش بحث کنیم برای بحث خواهیم کرد من تو نشست پیش گفتم ما دواز هزاره داریم همطوری که خانم دکتر گفتن زمانی که فریدون سرزمین اصلی رو میده به ایرج کجا رو میده ؟ ایرانویج و دشت سواران نزه گذار تو ذهن ما بعدن سرزمین اربات جدا شد بعد در انگلیسی ها این تفرق ایجاد کردن در استاه ما، ایران و دست سوارانیزه گذار یکیه هر دوش به ایرج واگذار میشه این از این بعد گفتیم سومریا حتی اگه امروز هم می‌بودن همین امروز کشوری به نام سومر می‌داشتیم بله مثل چه می‌دونم روسیه مثل ایران مثل هر جا تازه الان تاریخشون شده با شیش هزار سال پس اینا نمی‌تونن 12000 داشته باشن اینقدر قد قدمت ندارن بنده های خدا اگر هر شما هر سرزمینی مثل ایران به من نشون دادین که گزارش سرما تو اسطوره داشته باشه عرض کردم نه گزارش سیل همشون داره گزارش طوفان دارن یعنی گزارش بعد از رو دارن گزارش طوفان و بزرگ سیل دارن گزارش سرما رو فقط ما داریم یعنی اینقدر قدمت داشتیم که سرما رو ببینیم بعدش هم آقا یه سرمایی که یک کم ایزمستون شیشه هم یخزد و حالا یک کم امسال چقدر فروردین در برف داریم و اینا تو اسطوره سبت نمیشه والله اینا تو اسطوره سبت نمیشه اگه تو مهرم ما یه دفعه برف بزنه ما الان تعجب می‌کنیم اما این جورا هم حتی تو اسطوره سبت نمیشه موضوع باید خیلی جدی باشه تا تو اسطوره بمونه خیلی خیلی باید جدی باشه گیاه سرد زمین سرد دو ماه تو همون دو ماه هم تازه هیچی چی نمیروید داستانه. بعد چون ذهن ما امروز نمیتونه قبول کنه که یک زمان یخبندان نیم کره رو در بر گرفته بوده میگیم خب الان کجا سرده سیبری آ بفرمایید ایرانیا سیبری بودن. وقتی اینقدر سرمادول گزارش میشه نمیگن سرما آمده پایین میگن ایرانیا بالاتر بودن بدبختی های ما امروز جمشید آقا گفتم یه دونه سند به من نشون بدین که ایرانیا بر اساس نیاکان ما بر اساس سرما کوچ کردن من کفایت میکنه برام یه دونه سند این از این جمعیت گسترش پیدا میکنه ببینین این ترتیب رو هیچ کس نمیتونه به هم بزنه جمعیت گسترش پیدا میکنه به سمت جنوب حالا بعد میگم چرا به سمت جنوب به سمت جنوب گسترش پیدا می‌کنن سه بار بعد از سه بار گسترش به یک جایی می رسن به یک رودی میرسن به نام رود دایتی ای این خیلی مهمه هر جا که بودن وقتی سه بار به سمت جنوب میرن تازه می ای یه رودیه به نامش میذان دایتی و اونجا ایرانویج اونجاست بابا از این واضحتر بگه ایرانویج در کنار دایتی است یعنی از ایرانویج راه نیافتادن برن پایین بد برسن به دایتیخ ای اینا خیلی واضحه. من مندونم چرا بعض زیش میزنن آقا میرم پایین میرسم به یک رودی به نام دایتی به وضوح میگه ایرانوش در کنار دایتی است بعد اون دیگه هیچ جا نمیرن یعنی از دایتی به تر دیگه گزارشی نداریم که کسی رفته باشه وقتی دیگه سرما خیلی زور میاره میگه کنار همین دایتی ور بساز برو تو ور که بعد سالی یه بار فقط خورشید و ماه رو ببینی اینطوری از سرما فرار کن دیگه جایی نمی میرن که ورجام کرد بسافت. حالا اون داستان داره من اون داستانشون میگیم. بابا این خیلی روشنه. خیلی بل... خوب. بله بفرمایید. بله. از میخواستم که شما این خصوصیات که برای رود دایتی دا گفته شده رو از لحاظ مکانی میخوایم از شما یه مکان. خب من مکانشو بفرم. الان گفتم. حالا بل... بعد هنوز وارد میشه مم... من نمیخوام خراب کنم موضوع رو. بل... من فقط به شما گفتم دایتی دا کجاست تو ذهن ما؟ سه بار به سمت جنوب میرن. و یه دفعه به یه نامش رو دایتی. دا بعد سرمای سختی میاد دیگه اون ما قبلو هیچ گزارش سرمایی نداریم شما یه گزارش گفتم یک دونه به من نشون بدین اولین گزارش سرما وقتیه که رسیدن به دایتی مستقر شدن انجمن کردن حالا بهش میگن آقا جان میخواد سرما بیاد دیگه بهش نمیگن حالا برو به سمت جنوب بازم میگن کنار همین دایتی که ایرانویج هم ذکر میکنن دقیقا کنار دایتی هست در همین ایرانویجی که کنار دایتی هست ور بساز من نمیدونم بدبخت کس که اینا رو نوشته خیلی واضح نوشته ماها دوست داریم پیچش بدیم ولی بازم مکانو نگفته نشو الان عرض بکنم بعد سه بار گسترش به دایتی میرسن هنوز نمیخوام بگم کجا میخوام با سندایی که از خانم دکتر گرفتم انطباق بدم با سندای ایجی و به شما بگم کجاست باش. من فقط یک ارزه دیگه خیلی, خیلی, خیلی, خیلی کوتاه میگم و دیگه میبندم تا نشه خیلی نشست با در این باره بعد از که از ور میان بیرون سرما تمام میشه بهش میگن آ زندگیگی سرما تمام شد دیگه از او وره بیا بیرون. بعد جمشید رو میذارن روی گردونه تو شهرها در آذربایجان می گردونن و اینجا جمشید میگه آقاائی جشن نو روزه ببینین میان پایین می به دایتی سرما میشه ور می ساز مین تو ور ها که از ور میان بیرون بهش میگن دیگه سرما تمام شد میان می بینن گل شده میگن این نوزه این یعنی تا اون موقع ما هنوز نوروز اول سال نداشتیم نداشتیم بله. اول سال سال کشاورزیمون بوده. آغاز سال ما اول زمستان بزرگ بوده. یک آبان بعدم بهتون میگم چرا یک آبان. وقتی میگه چند زمستان گذشت داره واحد سالش رو میگه هنوز که سرما نشده، هنوز جمشید تو ور نرفته، هنوز نیمده بیرون که نوروز اعلام کنه بگه بله، سه تا نوروز گذشت، 300 تا نوروز گذشت. ولی نوروزی نه درست نشده. واحد سالما زمستان بوده قبل از در واقع نوروز واحد نوروز سال... آقا درست نشده بوده اصلا آه. تو تاریخ جهان و ایران نوروز نبوده بگه مثلا 300 تا نوروز گذشت نداشتیم آغاز سالما سال خرمنمون بوده به زمانی که خرمل جمعی می‌کردیم خرمن... آماده زمستان می‌شدیم یک آبان اول زمستان بزرگه واحد سال زمستانه عرض من تمون بله خیلی متشکریم جناب آقا ایران مهر هم که وقت هم رایت کردید خدمت خانم دکتر هستیم ادامه مباحثشون در نشست گذشته یک مبحثی رو شروع کردن تا حدودی ناقص موند اون مبحث رو ادامه بده. درود به شنوندگان عزیز من همونطور که جلسه پیشم گفتم فکر کنم که یعنی تصورم این بود که ما میبایست که اول این شخصیتی رو که در دربارش بحث بکنیم به یک نتیجه دربارش برسیم من یه برنامه دیگه هم بود گفتم واقعا من هیچ نتیجه قطعی ندارم جدا تارف با... نمی کنم یعنی تو همین برنامه ممکنه مثلا نظر چیزی از دوستان بشنوام و مثلا بهش فکر بکنم و شاید مثلا چند وقت بعدش بیام بگم که مثلا این خیلی نظر جالبی بود من فکر می کنم که مثلا بر اساس حالا دانسته های من نه اینکه مثلا حالا نظر من خیلی چیز مهمیه بر اساس دانسته های من بگم که فکر می کنم مثلا این درسته ده. بر همین اساس هم چون که واقعا هیچ نظر قطعی ندارم یعنی یه نتیجه ای ندارم فکر می کردم که مثلا باید این شخصیت حالا مثلا مثل جمشید رو. ما بررسی بکنیم تو اسطوره های مختلف اول یه تصویر کلی از این جمشیدی که حالا آدم دورست شاه پیامبر خداست هر چیزی که هست چون همه اینا هست ما همه کشه قاسی که با دوستان بله فکر <تصفح> می‌کردم که مثلا اینجوری بررسیش بکنیم بعدا مثلا تو جلسه های بعدی بالاخره به یک سری نتایجی برسیم ما یک پایه خیلی خیلی عظیمی که داریم از اسناد و مدارک و شواهد و اینا که بخوایم مثلا این شخصیت استوره ای حالا ببینید جمشید رو دوش بررسی بکنیم، استوره ها و داستان ها و روایت های سامی بین و هستند در واقع که اتفاقا خیلی خوبم توی متون پس از اسلام اون حفظ شدن. جمشید اونجا هم واسه خودش یک داستانی داره یعنی جدای از این داستانهایی که حالا ما از اواد داریم از متون پهلوی داریم و، از متون هندی داریم و حالا استوره های اجرایی رو که من اصلا هیچ درباره شو نمیدونم ولی خب باقای ایران مهر میدونن بعدا صحبت میکنن یک پایه خیلی عظیم کارمونم من فکر میکنم باید همین استوره های میان رودانی باشن چون اینجا در اساس همین متون کوهن خود ما، متون کوهن که میگن متون البته نوشته, ها نوشته های پس از اسلامه یعنی نویسنده های عموما پس از اسلاممون نوشتن این نوشته ها رو ولی از منابع کوهن یعنی نشستن همون جواس خودشون داستان ببافند همشون میگن که ایرانیان این گونه میگویند مثلا این گونه جمشید را با سلیمان مقایسه میکنند یه بالاخره کلی مطلب هست که بخوام درباره جمشید و آره حالا اون چهره در واقع چی میگن مشابه و موازی جمشید در اسطوره های میان رودانی هم صحبت بکنیم مثلا خب وقتی آقای فیروزی اشاره میکنن مثلا به حمزه اصفهانی خب اگر بخوایم این کسانی مثل همزه اسفحانی رو در نظر بگیریم و نوشته هاشون رو سند قرار بدیم همانند همزه بسیارند و خب پس در نتیجه فکر کنم همه اونا هم باید در واقع وارد بازی بکنیم دیگر اگر این گونه باشه من جلسه پیش خیلی مختصر مفید یعنی فرصت نشد که حالا بخوام از بخش‌های مختلف ریگ چیزی بخونم از اینکه جمشید چگونه تصویر شده است در متون هندی نمیدونم مثلا الان این کارو بکنم یا نه فکر می‌کنم شاید الان چیزایی از چون چهره کلیش فکر می‌کنم مشخص شد حالا میشد از ریگ ودا خوند که اون تصویری رو که اون نویسنده های باستانی دارن رو مثلا نشون داد ولی خب به طور کلی گفتیم دیگه یک شخصیت نیمه خداست خداوند مرگ است و بالاخره دورانش دوران بسیار خوبی بوده و یک جلوهی از انسان و نخستین بودن درش هست اینجور چهره است اما توی متونی که ما داریم من فیلم کنم حالا این مبحث میان رودانیشو باید ادامه بدیم چون این به این راحتی سر و هم نمیاد اونتا در متونی که ما داریم حالا مثلا من الان یه چیزی از دینوری بخونم یک نظر خیلی عجیب و غریبه در برای مثلا جمشید و, مثل... و ارتباطش با بدایم. ابن قطعبی دینوری منظرتون هست دهن اسمش ابن قتیبه ابن من یادم از مبرخین دوره اسلامی بوده کتاب تاریخ علم و امات و سیاست بله ابن قتیبه دینی هستش البته الامات و سیاست هم منسوب به او هستش بلد. از حتی نمای مثلا اهل سنت میگن که این کتاب مال اون نبوده ولی مصنفات دیگه هم داشته مثل اخبار و توال هم من از اخبار و توال می ببینید اینو الان دارم می خونم فقط برای اینکه بگم که ما باید به کجاها سر بزنیم و چه مطالبی رو بخونیم و به همین زودی از وندیدات به نتیجه نرسیم به کمی بیشتر خودمون رو به چالش بکشیم درگیر بشیم برد. درگیر بشیم و اینجوری که خیلی راحت شد دیگه وندیدا تمام مطلب رو بست و ما اصن دیگه تموم شد فکر می‌خوام بحثمون اینجوری با وندیدات یعنی من الان اگر بخوام به عنوان شنونده اینجا نشسته بودم فکر میکنم بس بسته شده اصلا دیگه وندیداد آخر سخن رو گفت و تموم شد دیگه ما 3 نشست خانم دکتر <تصفيق> ترخیص کردیم از ورود به جمشید برای چی بود برای که دوستان بیان اسناد مختلف رو بگن و بس یک طرفه نشه یکی یه رو بگیر و نتیجه بگیره به تهش برسه ما خیلی دوست داریم که اتفاقا است سوال جلسات همچنان همه کارشناسه حضور داشته باشن و به چالش کشیده بشه یک سند با سنده دیگه سنده دیگه با سند دیگه تا به این نتیجه درست برست بله. بله کاملا درست ببینید من الان اینم برای یه مقدمه حالا خیلی چیز بگم من الان کاری که دارم برای پروژه پایان نامم انجام میدم در واقع مقایسه استوره های ایرانی هست اون بخشش که بیشتر در متون پهلوی البته منعکس شده با مجموعه 63 کتاب تلمود بابلی شما اگر واقعا یک کار جدیدی هم هست یعنی اصلا جدیدن باب شده که دارن این کار رو انجام میدن ایران شناس ها و تلمود شناس ها و خب شما اصلا با یک دنیای دیگه ای اونجا مواجه میشین که ممکنه خیلی از فرضیات ذهنیتون خیلی از چیزایی که تو ذهنتون بوده اصلا تغییر بکنه، عوض بشه، تعجب کلی بکنید. به خاطر همین میگم یعنی اون ور قضیه رم باید دید. بره. باید دید، بره. حالا این حکایت دینوری رو ما بکنم بخونم، وقت هم, هم تغییر بشه. ولی خب خ... در حال جالبه میخوام بگم یعنی یک دیدی هم کاری نداریم ببین که ببینید دینوری اینجا داره درباره نوح صحبت میکنه. و میگه نوح در هنگام مرگ پسرش سام را به جانشینی خود برگزید و سام نخستین کسی بود که قدرت شاهی را پا برجاست ساخت و پس از سام جمشید پسر ویونکان پسر ایران بود ایران اونجایی ای شخصیت که جمشید پسرشه و فروغ قدرت شاهی را دوام بخشید و حالا میگه ایران کیه و ایران همان ارفخشت پسر سام پسر نوح است گویا سام کسی است که کارگزار دودمان نوح پس از مرگ وی بود ما این فقط من از نیواری دارم میخونم ولی این خیلی چیزه این حکایات که جمشید رو کلا اصلا با نوح پیوند بدن و اینا خب اصلا چیز جدیدی نیست این کار رو میکنن و ضمنن این که اصلا جمشید با بابل اینجا یک پیوند خیلی شدیدی داره توی این داستان ها اینا خب قابل توجه برای چی جمشید باید با بابل این چیز رو بلده. داشته باشه با ترجمه این که مثلا دینوری هم قرن سوم هجری هستش یعنی دوره اندیشمندان اسلامی بود که خیلی دوست داشتن این تاریخ اسطوره های مختلف رو به تاریخی که در واقع تو کتاب آسمانی تورات و انجیل و قرآن بوده به اون در واقع نسبت بدن حالا اینجا داره میگه که سام در کجا زندگی میکرد و اینا کاری نداریم اینم شاید بد نباشه که میگه وقتی که سام کوچ می‌کرده مسیری که چون ایلاق اشلاق می‌کرده در واقع میگه که زمستان را در سرزمین جوخی به سر می‌برده تابستان را در موصل و راهی که میرفته بر کرانه شرقی رود دجله بود از این روز که این سرزمین را سام راه می نامند و این همون است که ایرانیان آن را ایران می نامند سرزمین مجد. کرانه شرقی رود دجله که سام ازش توی از تو این مسیر یکی لاقش لاق می کرده و در عراق مستقر شد سام و این سرزمین را قلم رو خاص خود کرد و ایران شهر نام گرفت پس از او یعنی پس از سام پسرش شالخ فرمان روایی کرد و چون مرگ دور رسید کار ملک را به جم پسر ویونکان که پسر برادرش عرف خشت بود عرف دال آخرش هستش بود صفر. و جم بنیاد ملک را مستحکم کرد و ارکان آن را پا بر جا ساخت و در قلم روی خیش بناهایی برای نشان دادن جاده ها ساخت نوروز را اید قرار داد و گویان در زمان جم در بابل اختلالی در زبان ها پیدا شد همون داستان معروف بابل و اختلال در زبان ها و فلان برج بابل و اینا به دین گونه که نسل نوح در آنجا بسیار شد اینجا هم به بسیاری جمعیت داره توی این ورژن داستان اشاره جمعیت و آن سرزمین از آنان پر گشت کدام سرزمین بابل منظورش بلو. و زبان همه مردم سوریانی بود که زبان نوح بود روزی بامدادان چون سر از خواب برداشتن اختلالی در زبان آنان پیش آمد واجه های آنان دگرگون گشت و بعضی لغات با بعضی دیگر عوض شد و بدین گونه هر دسته از مردمان به زبانی سخن گفتند که امروز زبان اعقاب آنان است سپس مردم از سرزمین بابل بیرون رفتند یعنی به خاطر این ازدیاد جمعیت مردم از بابل دارن خارج میشن. دسته ها از هم جدا شدند و هر کدام به سوی رفتن. بعد حالا یه جایی و فرزندان سام پسر نوح با جم خیشاوند خود شاه سرزمین بابل در دورانی که زبانشان عوض شده بود بر جای ماندند. یعنی کسایی که خارج نشدن کیا بودن فرزندان سام و جم؟ اینا تو منطقه در میان رودان میمونن اون موقعی که جمعیت زیاد شده بقیه خاریر میشن. حالا یک فهرستی میده از نام کسانی که خارج شدن و کسانی که موندن و اینا اسم قبیله و اینا داره میگه. بله. منظور چه قبائلی که بعدت با نام بنی اسرائیل هم دروقع شناخته شده؟ از اونها هم بینشون هست. دلهای دیگر عقاب نوح برای بیرون شدن از بابل تپیدن گرفت آنگاه خراسان پسر حالا اینو آلم ثبت کردن آرام هم ثبت کردن خراسان پسر آرام یا عالم پسر سام از اونجا بیرون شد و خراسان را خطه خیش برگزید حالا اینا دیگه مزید. آره اینا دیگه داره با نام ها بازی می‌کنه میگم حالا ما نمی‌آیم بگیم که این چیزی که دینوری ثبت کرده دیگه این داستان است و تاریخ است و اینا ولی میخوام بگم که ببینید این داستان که داستان جمشید باشه و این شخصیت که جمشید باشه این گونه ها و شکل ها و ورژن های خیلی مختلف مختلفی داره, داره. یعنی هر کسی ما یک خودش... جمشیدی داریم من. که اصلا تو بابل همون تقریبا همون اتفاقهایی که برای اون جمشید دیگر افتاده برای اینم داره میافته. و فقط هم اینجا چیز نشده ثبت نشده من حالا توی دیگر اصلا اگر کار به اینجا رسیده فکر می کنم که توی برنامه های بعدی این چهره این جمشید دیگری رو که با روی کرد به بررسی میشه کرد اون چهره رو شاید از منابع دیگه هم بخونیم چون اینم چهره چهره خیلی محکم و درخشانی داره یعنی آلکی نیست نمیشه جوری به راحتی ازش گذشت با. پس یک جمشیدی داریم که در بابل در دوران اون هم جمعیت زیاد شده در دوران اون هم دوران خیلی خوب و خوشی بوده و بود. مردم نمیدون به خوبی زندگی میکردن و یک گسترش هم به گفته به قول آقای کریمی واژه گسترش خوب بود یک گسترش هم در دورش اتفاق افتاده یعنی خلاصه فقط یه دونه جمشید نداریم که مثلا با های مختلف فقط در عوستا ثبت شده باشه مثلا باز یک جمشید داریم روایت های آره روایت بونابان هزیم یک روایت جمشید واقع نداریم مثلا جای دیگه باز جمشید رو حالا توی متون مختلف میگن که مثلا نوروز اصلا روزی بود که جمشید از شهر خودش که دماوند باشه سوار حالا بر یک چیزی شده بود که براش ساخته بودن در هوا پرواز کرد و مثلا به بابل رفت دوباره این همیشه یه با یک پیوندی با بابل داره یا مثلا سامي بلعه دیگه مثلا سامي میگه که هزار سال پادشاهی داشت ان در این هزار سال یک ساعت درد سر یا بیماری نبود همه قضیه بیماری و میگم همه این چهره ها رو همه این چیزا رو ویژگی ها رو داره ولی همیشه یک پیوندی هم با بابل داره یک چنین چهره ای هم داره جمشید حالا من فکر می کنم که اینا کافیه ولی من من, این, من این داستان بررسی متونه میان رودانی رو خیلی جدی‌تر راسه امروز با این آمادگی نیومده بودم که به اینجا برسیم من فکر میکردم که امروز جمشید رو در متون هندی و در اوستای کمی بررسی بکنیم شاش. چون خب به هر حال در یشت‌های مختلف هم از جمشید خیلی نامبرده شده. ولی به اونم با اونم و از من یعنی من فکر کردم از اوستا که بخوایم استفاده بکنیم خب دیگه ب... یعنی آغلاً باید یشت ها رو هم در نظر بگیریم، بررسی نه. بکنیم چون چهره‌ی شاخصی داره جمشید در یشت ها مثلا یک بار حتی تنها چهره‌ی حالا پادشاه هرچی که بخوایم بگیم هستش که در گاهان ازش نام برده شده جمشید ما هیچ کدوم دیگه از این پادشاه هایی که داریم در اوستا در گاهان ازشون نام برده نشده ولی جمشید در گاهان هست نشون میده که خیلی چهره ویژه‌ای است اگه بخوایم تو اوستا هم جمشید رو بررسی بکنیم من فکر یه دو سه جلسه کار می‌کنه بله بعد وارد متون حضور بشیم. شمام نیاز وارد متون اسلامی بشیم بعد وارد اسطوره های بین بشیم وارد اسطوره های بشیم خلاصه بعدا به یک نتیجه ای شاید برسیم شاید هم نرسیم نرسیم هم هیچ اشکالی نداره و قطعا برای تفسیر جمشید از متون مختلف ایرانی به حضور شما نیاز هست و همینجا این قول از شما میگیریم که حضور داشته باشین تو نشست ها و بهره ببریم از دانش و مطالعات شما خب آقای فیروزی فرمایشات شما رو می‌شنویم ضمن اینکه برای جمشید و برای رود دایتی زمان تعیین میکنه مکان رو هم از دید در واقع مطالعات خودتون رو هم میخوایم از شما داشته باشیم درود دوباره من اولی پرسش داشتم که رو اصلاح کنم یعنی میخوام از اساس بچینم بله آیا متون باستان شناسی از استادای اعظم خواهم پرسیدم آیا متون زمین شناسی و باستان شناسی تایید کردن که قود یخ بندان به فلات ایران رسیده یا نه یعنی مثلا یخ بندان بوده یعنی اون به ایران, ایران رسیده, رسیده ایران؟ یعنی اون یخ ها. یعنی اون یخ چی شالها. یعنی لایه یخ به فلات ایران رسیده ایران. یا تاثیراتش ببینید زمانی که لایه یخ از قطب شمال گسترش پیدا میکنه همین الان لایه یخ تا هر جا که در نیمکره شمالی هست خب شما نمیتونید کنار دیواره یخ وایستین رو زمین خاکی و بگین حالا اینجا کشاورزی میکنم. شما تا فرسنگ ها به سمت جنوب هزاران کلومتر هزاران کیلومتر، ارز می‌کنم فرسنگ ها که ارز می‌کنم به سمت جنوب اثرات اون سرمایه نیم شمالی رو دارین تا به یک جایی برسیم که کم کم زمین خاکی زیر پاتون یخ نزده باشه باز بیاین جنوبتر آماده مثلا پرورش گیاه باشه اینا بلی. حالا در اون زمان آخرین یخبندان یخاب کاملا تا نزدیک دریای کاسپی تا کنار دریای کاسکاسپی رسیده بودن خب معنیش این نیست که کنار آخرین دیوار یخواسی دستو بزنی بهش بگی خب حالا بغلشو میخوام شخ بزنم تا فرسنگ ها تا صدها فرسنگ به سمت جنوب اثراتش اصلا کل آقا دمای کره زمین میانگینش الان شش 6 درجه سانتیگراده. در اون زمان میانگین دمای کره زمین منهای 6 درجه سانتیگراد بوده هر یه دهمش ده حرفه شما فرض نکنید ما وقتی میگیم که تو ایران حتما اون لایه یخی رو ایران رو پوشونده بوده مثل سوئد یا نه زمین زیر تا فرسنگ ها پایین تر از اون لایه یخی زمین زیر پاد یخ زده حتی نمیشه با کلنگ زد اونو باید خیلی بری به سمت جنوب تا آمادگی. یه سمت یه از سمت از این شمالی هر جا که هستی با... کاملا باید به سمت جنوب فاصله بگیری خیلی منو زاویه ایران میر حالا حالا من میخوام از دریچه این هاپلوگروپ های ژنتیکی مسئله بررسی کنم چون دیگه این درون ماست و درون اجداد ما ایرانیان و کلا هند اروپایی های شرقی اجداد آریایی ها اجداد روس ها اجداد لاهستانی ها این ها مردمان یه ای هاپلوگروپ مشترک نهایی دارن به اسم R که این آر قدمتش تو مقالات مختلف بین 19.900 سال تا 34.300 سال هست که متوسط میگن 26.800 سال خواستگاهش کجاست آسیا میانه فرارود آسیه مرکزی به سطح اسمشون گفتم از اون R1A نشعت گرفته که خیلی از ما ایرانیان داریم، خیلی از روسها دارن غیر لحسانی و اوکرانی دارن این متوسط 16.500 ساله و خاصگاه این جنوبی تر هست در مقالات میگن خاور میانه خاور میانه از تای افغانستان از تا دریایی ملیترانه ولی خب ما امروز میتونیم بگیم بر اساس گستردگی این که هرچی به غرب کمتر میشه هرچی به شرق بیایم بیشتر میشه بین مردمان این بعد شرق فلات باشه جنوب فرارود آسیای میانه و شرق فلات ایران حالا بین عجیب که چون ما اینو داریم و خاصگاهش آسیای است پس خاصگوی اولیه هند شرقی و جمله‌نیا ما بعد آسیای میانه باشه وقتی میگه 26800 سال یعنی یخبندان سو وقتی میگم 18500 سال پایین یعنی در رفتن اومدن پایین تر حالا 18500 سال پیش به بعد یا شایی خود قبطرش اینا پایین هن. اینا شرق فلاحات ایرانن اصلا یخبندان شارم رو نمیدیدن از سرما رو میدیدن کشاورزی وجود نداشه بافندگی وجود نداشه که بخواه جمشی دورانش اون اتفاقات بیفته اینا همه 9000 سال، 10000 سال هست. قبل از اون انسان خوشه جام کن بوده. یعنی اینا خیلی ساده است با چیزهای باستان شناسی قابل تعریف است. ما اینجا میتونیم تأمیم بدیم، ولی نمیتونیم بخواد فرض شما این است که کشاورزی دیگه 10000 سال جلوترده. 10 خوشه جام کنید. ممکن است استثناء بله یه خوشه ی شانسی کاشتی یا مثلا یه قبیله یه جا یه کار کرده، ولی این اون کشاورزی ما میشناسیم نیست. این اون مسیری که پیدا شده و بعد گسترده شده این اون نیست. اون استثنا ممکنه. بشه یه گوشه‌ای ممکنه پیدا کنین شما. ولی قطعی نگیم. ولی این نشون میده که اینها یک زمانی آسی میانه بودن و از یک سرمای سوم این فرار کردن مدن به جنوب. یعنی سرمای چهار رو ندیدن. جنوب رفتن. اثرات اون سرما رو دیدن. حالا 9000 پیش از میلاد اسبوا در یکی از قاره ما یکی از مناطق قاری شمال ایران در مازندران قدیمی‌ترین رام شده اسبوا داریم. مستخونه اسب به رام شده است. 9000 سال قدمت داره. نبا اندازه ی یخمندانش چهار اون قبل از یخمندانش اون که بگیم دوره جمشید اونجا بودن اصل چیز کردن وافن اصلا همین چیزی نیست این 9000 ساله شه که کشاورزی چیزی ما بس کشاورزی امسال هم میشتن همین حدود خدمت داره شاید چند از این 7 سال تا گستردهگی اون مثلا بعد از اون خیلی شتاب گرفته کاری نداره ولی ببینید این داره نشون میده که اینا دوره نمیتونن باشن دوران خیلی قدیمه ما بریم بن یخ بندان سوم و چهارم فرض کنیم به معنی که سن تقریبا اتفاقاتی افتاده بین اینا یالشون هم بوده بعد اونم برم پوینت اصلا توی کیت من یه نفر نمیره زمین که ژنتیک هم نمیخونه با مختصات ولی قاسک اولی قطعاً فرا روت است آسی میانه است و گام دوم شق فلاتیانه اون چیزی در بندان یکم فرگر یکمش میبینید اینو شق فلاتیان در خوراستان حالا یه مسئله دیگه ببینید فکر کنید الان روزگار زرتشت یک قلم فقط یک نفر داره زرتشت اینجا یه قلم فقط داره سرنافی روزی و میخواد راجب من میخوان راجب کریم میخوا خان بنویسن چند تا فرمان رو قبل از خودم حالا زرتشت هم همین حرکت رو اومده کرده راجب جمشید چند تا فرمان قبل از روزگار خودش این هشت ترجمه فارسی من یک جمله سرکورو میخوره یک ترجمه دوست جمع ویونکان نیست که برای خوشنودی مردمان و خیشتان جان خداوند جهان رو خار بود ترجمه پور از این گنهکاران شناخته شده جمعی ویونکان سه نقطه است جمشید پسر ویونکان یکی از آن گنهکاران شناخته شده است ترجمه شوشتری میانه اینها گنهکاران حالا این سختنشه ویون وت ویا و یمع نیز گفته شده بعدی جعفری درباره این گناهان جمشید فرزانی ویونکان دور ارزادی همینطور آشنل از همینطور حسین وحید همینطور تمام اینها جمشید توش یک انسانه. نه است؟ نه شکول قمر میخواد بکنه، نه چیزی بهش منسوب است. چون این نسبتش به اون نسبت من به کریم خانه. من اصلا بیشتر میفهمم کریم خان کی بوده تا آدم هزار سال بعد از من، ده هزار سال بعد از من. این قضیه در نظر بگیرید. حالا حالا این جمشید که میتونه انسان باشه چند نسل قبل از زرتوش و بعد از هزار سال قرار میگیره، میتونه اصل به دورانش رام شده باشه. میتونه به دورانش کشاورزی شک گرفته باشه خیلی گستره نشده ولی میتونه وجود داشته باشه اینها قابل حالا حرف زدن هستند آبراهی جمشید در ورجم کرد میسازه یه رو هست در چمنزارهای یک سازه نه کشاورزی مدرن به دوران مثلا باستان شناسی در خوزستان را افتاده اونطوری نیست یک سازه است هم داشتن چون کشاورزی میشناخم بعد از 9000 سال پیش 7 8000 سال پیش این اینجا می تفسیر کنید ولی با قبل از بین یک بندانو چهار و سه اصلا نمیشه چه جوری میشه ارزام خدمتون که این مسئله مثلا من به یاد این می که مثلا می فایی یه چیزی کشف بشه در قرن بیستی کن بعد برن تو یک کتب مقدس پیده کن ای در این کتاب مقدس قبلا نیشاره شده بود این خنده داره چه زودتا شما نگفتید نمی خواستیم باشه این مسئله هستش. حالا این قضیه الان میخوام بعدتون اعدادی که وجود دارن رو خدمتون چیزی بگم ببینید این اسناد وجود داشتن به این صورتی خدمتون میگن بیرونی اینا رو آورده ببینید ما بله داریم این های عجیب قریب فعلی رو ولی خب ببینید بیرونی چی میگه قدرش هم واقعا خیلی روحید آمپرش رفتود بالا این اعداد چیه تعجب تحجب کرد دقیقا این اعداد هستن هستن هستن همینجوری میرسه که این جدول خیلی حرف برای گفتن داره ببینید میاد میگه که این, این جدول قبلی و میذاره هر ک اعداد عجیب غریب مثل چیزی که همز اسفانی دیگران گفتم میاد به جدول آخر میرسه و تطبیق میخواد بده و ما میفهمید تطبیقش یک جایشکال داره خواهم گفت میگه یا که پاچان آشوره که فریدون است انقدر سال سی و پنج سال بعد سلمانسر سر که سم است چه سال همی جمع هم میکن پایین می پایین کیغات 49 سال دیگه صد ۲ سال نیست سناخیری به دوم سی سال بخت و نص باشد 57 سال خیلی خوب بیاد همینجوری پایین تر می ادامه میده یا کی همون ک مثلا 8 سال گفته این میاد همینجوری پایین تر کای ندارم هیچ خب اگر این تطبیر با پچ آشوری میخواست باشه ما جدول پاچان آشور نرم امروز داریم یا بابلی نو ما بخت و و سال نه 57 سال. پس این عددی که می بختتون نی کیک آاووس باشد پنج و سال این اللش این چههت های داستانی رخ داره بین نبوک نظر دوم و کیک کااووس ولی ما سال جفتهشون حالا داریم اون 42 سال بوده ولی اینی که واسه کیک کااووس برد 5 سال مال کیک آاووس مال پادچه کیانی دو و این پچه کیانی مال کسی دیگه نیست سر 5 سال متون وره هم نیست. این 57 ساله پس ما دا طبیعه داریم به دست میرییم روی یک متن کلاسیک. دیگه از اون فاجعه تویم خارج میشی. تا بیای شما جلوتر برای جمع شد در صفحه 128 کتاب آثار باقی یک جم... این تو این جدول نیست یک جمله خیلی قشنگ گذاشته خیلی بر من جالب بود که از اون جدول خارجه شیخ خودش هم نفهمیده چون جمله به این صورته نوشته که به فارسی ده آک و به تازی زهاک بر این پادشاه که اسمشو نمیاره خروج کرد و با او جنگ نمود تا آنکه او را شکست داد و پادشاه را بکشت و خود به سلطنت رسید تا آنکه کیانی ها که پادشاهان بابل بودن اله کردن بله مدت حکرانی پادشاه مقتول به دست زحاک 72 سال بود یعنی این اعداد فرار کرده از اون کردار ساسانی هنوز بین ما ها وجود دارن 72 سال هم به نظر خیلی از لحاظ عقلانی طولانی نمی ولی ما هایی داریم ببینید این نکتهش همینجاست این پادشاهی از پدرش نگرفته اگه از پدرش میگرفت چون پادشاه قبلی 3 سال حکومت کرده، حالا پسر بخواد بیافته 2 سال غرقلونیه که برادرش تحمور اس بوده یک سری از متون میگن برادرش, برادرش بوده یک سری از متون میگنش نسبتی با هم نداره وی ونکان یک جا پدر جفت بهشونه یه جا نیست خب کاری ندارم با این ولی ما غیر از این قضیه شواهدی داریم فرعونی داریم 94 سال حکومت کرده فرعونی داریم 63 سال حکومت کرده از گهوارهم نه به پادچای رسیده و این قضیه چون شاهد بزرگتر داره برای ما میتونه اقلانی تر باشه ولی این که ما بخوایم بیایم این فرد کلان بذاریم زیر کنار عشو زرتوش نوشته شد بذاریم کنار و بخوایم تعیین تکلیف جدید کنیم برای اساس اون که حتی وارد این میگم بیرونی قدرت نکره خیلی قدرتمند بشه این به نظر من یک مقدار تندرویس ما بعد آروم آروم هر دو مساله رو با هم بیاریم جلو اونایی که به دوره میخورن ما در قلب یک دوره تعریف میکنیم مثل وندیش اسم میذاریم روش میگیم دوره برافز جمشید ولی هویت تاریخی اینها رو ما تا قطعا کتیبهه پیدانش که بگه اون کتیبه چند هزار ساله بگه جمشیدی وجود نداشته است ما نمیتونیم اینا رد کنیم و میخوام روش اجتهاد کنیم اونم چیز نیست شما 1.600000 اه... کیلومتر مربع خاک رو شوخم بزنیم ببینین کسایش آیا کتیبی هست یا نیست خب نمیشه که ممکن شده اصلا هیچ کتیبی اصلا پیدا نشه قطعا اینجوری نیست ولی من اصلا آخرشو بگم بله. تا وقتی چیزی پیدا نشه در رد یک مساله ما نمیتونیم قطعا بر رد و مسئله رای بدیم یعنی فعلا من یک متنی دارم ندارم به سبب گاتا یاسناهات 32 بند 8 مثل من نسبت به کریم خان اون نسبت به جمشید گفت این انسانه و متون متعقل گفت این پاتشاست با فلان کردارها و سال حتی حقیقیش هم دارم تا وقتی یک سنت در این درجه از اعتبار پیدا نشه که اینو بخواد رد کنه اعتبار زمانی نویسنده و انسجام سخن پیدا من نمیتونم این رو بذارم کنار رو اونو بچسبم بهش باشه پس چون وقت برنامه رو به پایان هست یعنی تقریبا دو 2 دقیقه من گذشته ما از طرف فرمانم اشاره میکنن که رو به پایان هستش من حالا از کارشناس برنامه دیگه که با این نظر مخالف هستن میخوام که در واقع نقیض صحبت ایشون رو که آیا واقعا اصلا چنین چیزی رو میشه از لحاظ علمی پذیرفتی یا نپذیرفت و در برنامه دیگه به بحث بذاریم خیلی علمی با هم دیگه بشینیم بحث بکنیم. بخش 21م بله، قسمت 21. شنوندگان هر بحثی که تمام بشه، بحث‌ها رو پایان یافته فرض نکنن. بله، دقیقاً. وقت دقیقاً پاسخ نبود، دقیقاً. بنده به دوستان، دوستان به بنده یا به هم. بله، بله، که مثلا همین آنوار رو ما قسمت نهم داشتیم بالده. مثلاً در قسمت 21 در واقع اون پژوهشی که جناب آقای کادمی فرمودن در قسمت 20 پاسخ دادن. شنوندگان گرامی خیلی ممنونیم از توجهتون. قسمت رو به پایان هست شما رو تا آغاز قسمت 22 و ادامه با برنامه ایران ویژ به خداونده متعال می سپنیم ها رو نگه دارد.